بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و عالی تاهرین اللهم صلی اللہ علی محمد و محمد اولین سوره قرآن سوره فاتحه است فاتحه فت گشایش یعنی کتاب رو باز میکنی به این سوره برخورد میکنی فاتحه تول شروع کننده کتابه بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند هستی بخش مهربان به اسم به, نام به اسم یعنی به نام الله خدایی که الله اسمی جامع همه صفات خدا حال درباره الله بعضی میگن ریشش از اله هست یعنی الوهیت بعضی هم میگن ریشش از وله هست یعنی ذاتی که افراد درش حیران موندن و نمیتونن بفهمن اون ذات را به اسم اون الله خود ماده سمو هم بعضی به معنای رفعت گرفتن بعضی به معنی داغ و نشانه یعنی با توجه به ریشه لغاویش اگه معنی رفعت باشه یعنی به اون اسم رفی من دارم آغاز میکنم اگر اب معنی داغ و نشانه باشه یعنی دارم نشانه و آرم بندگی میزنم شما اگر کاری رو برای رضای خدا شروع میکنی وقتی آرم خدا رو بخوایی روش بزنی باید با اسم خدا شروع کنی به اسم الله به اسم الله که رحمانه حالا رحمان یعنی رحمت عام رحمان رحمت عامه یعنی عمومیت داره در عالم ویژه کافر میشه ویژه منافق میشه و نه فقط کافر و منافق تمام موجودات هستی بهرمنده از این رحمت خدا هستند این اما رحیم بعضی میگن رحمت خاصه. رحمت خاص یعنی ویژه فقط مؤمنین میشه رحمت خاصه. مثل اون عمومیت و عام نداره یه مطلب مطلب بعدی بعضی میگن رحم... رحمان که رحمت عامه این رحمت عام مربوط به نعمت‌های های دنیاویست مربوط به نعمت‌های های دنیاویست اما رحیم چون رحمت خاصه میگه اون است که خدا در مسیر زندگی افراد قرار میده مثل هدایت ها چه خاصه دیگه حالا تفاوتی که بعضی قائل شده بودن بعضی گفته بودن آقا مثلا ما داریم که یا رحمان دنیا ول آخره و رحیمه ما. یعنی خدا رو در دو عالم رحمان و رحیم داره معرفی میکنه یعنی معنویت رزق معنویت در هر دو عالم نصیب خواهد شد بسم الله رحمان الرحیم حالا سوره مبارکه هم این سوره خب هفت آیه داره و تقریبا تنها سوره است در قرآن که بسم اللهش یه آیه مستقله مثلا سوره های دیگر رو اگر شما باز کنی بسم الله به اون آیه اولش یه آیه حساب میشه به تنهایی آیه حساب نمیشه حالا اینجاست که مثلا گاهی آثار فقهی هم داره مثلا بعضی آقایان میگن آقا شما در نماز آیات دیگه رو نمیتونید پنج قسمت کنی چون بسم اللهش با آیه اولش یکی حساب میشه این یکی حساب میشه بسم الله الرحمن الرحیم سوری معارکه هم که چون هفت آیه داره بهش میگن سبع مسانی سبع یعنی هفت مسانی از تسنیه دو حالا سبع دو یعنی چی یعنی این سوره بعضی میگن خب چون در هر نماز شما دوبار بار باید هم حمد بخونید بهش میگن سبع مسانی هفت که دو بار میخونه بعضی ها میگن که سبع مسانی هفته دو یعنی این هفتایی است که دو بار بر پیغمبر نازل شده یک بار در مکه بر پیغمبر نازل شده یک بار در مدینه نازل شده بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله حمد ستایش لله برای خداست که رب عالمینه حالا حمد میگن یه فرقی با متح داره یه وقت از طرف مددهی میکنه مد میگه یه وقت حمد میگه میگه داره همد چیه حمد که شما ستایش میکنی توصیف کمال میکنی برای کارهای اختیاری یعنی کسی از رو اختیار خودش یه کاری رو انجام داد اون میشه حمد اما اگه شما آمدی گفتی چه گل زیبایی این گل دل به موزه آمده خودش اختیاری ندیشه چون اختیاری ندیشه شما چیزی درباره این گل بگی حمد نیست مد هست مدحش کردی الحمدلله برای اون خدایی است که رب العالمین است رب عالمینه رب عالمین همون کلمه ای من سعی میکنم بعضی واجه ها رو به اون چیزی که در فارسی برای ما متداوله بگیم رب یعنی تربیت کننده یعنی خدا تربیت کننده هم مالک و هم صاحب اختیاریست که مملوک خودش را تربیت هم میکنه تربیت میکنه یعنی چی؟ یعنی از قوه به فعل میرسونه استعدادهاش را بروز میده در الله رب العالمین حالا شما حساب کن از الحمدلله رب العالمین تا مالک یوم الدین که میرسیم این توحید نظری است داریم خدا را به این ویجیا ستارش میکنیم در مقام بیان فعلا اما میگن از ایاک و تا آخر توحید عملی چون بحث عبودیت مطرحه اون توحید نظری این توحید عملی الحمدلله رب العالمین سپاس برای اون خدایی که رب و پروردگار جهانیانه حالا این رب بودند، بودن فقط رب انسانها نیست ربوبیت خدا یه وقت در عالم مثلا کرات هستی خود سیستم زمین آسمان این ربوبیت از باب یا موضع جباریته یعنی چی؟ آقا مثلا خدا در منظومه شمسی مثلا نزدیکترین سیاره را به خورشید قرار گذاشته اتاروت باشه بعد زهره باشه همینجور بیاد تا زمین و بعدش هم سیارات دیگه اون سیاره هم شاید من نمیخوام مثلا جام اینجا باشه نمیخوام بپذیرم چون اصلا این ربوبیت مربوط به خلقت عالم از موزه جباریته یعنی موجودی نمیتوند از اون حدی که خدا براش تعیین کرده تجاوز بکنه اگر بخواد خطایی بکنه پیکرش در عالم متلاشی میشه اما نسبت به انسان ربوبیت رب خدا از موضع رحیمیت یه وقت از انسان ببینی از اون موضعی که خدا براش در نظر گرفته تج میکنه جاده را اما خدا اینجوریست متلاشیش کنه نظر میکیم آقا خدا با موضع رحیمیت اینجا برخورد میکنه یعنی در خطای موجودات طبیعی در آلم اون جبر و کیفر به تغییری نقدی سری کیفرش میکنه اصلا جاش که عوض بشه متلاشی میشه سیستم به هم میریزه اما نسبت به انسان میبینی خدا توبره باز میکنه رو بخششش را شامل حالش میکنه الحمدلله رب العالمین خدایی که رب العالمینه الرحمان الرحیم خدایی که رحمان و رحیمه حالا رحمان رو گفتیم رحمان اون رحمت خداست که در شامل تمام موجودات عالم میشه حالا کافر باشه مؤمن باشه موجودات حسی باشه اما رحیم بودنش میگه اون است که با تربیت انسان سر کار داره رحمی هستی که میگن رحیم رحمت خاصه اون با تربیت ما چی سر کار داره میگه آقا خدا پیامبر فرستاده کتاب آسمانی داده گناهان را میبخشه شفاعت رو نصیبت میکنه میگه اینا همه اون قسمت رحیمیت الرحمن الرحیم مالک یوم ببینید خدا مالک همه چیزه هم مالک دنیا هم مالک آخرته اما میفرما مالک یوم الدین این میخواد اهمیت قیامت را بگه جز که ما تو دنیا گاهی ادعا داریم میگیم ملک من زمین من خانه من کتاب من دفتر من چی یه چیزی به خودمون انتساب میدیم میگه در عالم آخرت تمام اینا هم دقت شده تمام ارتباط ها اولی که طرف می‌میره، دیگه مثلا خانه من دیگه معنا نیست ملک من باق من این همه اعتبارات فقط در این نشعه دنیایه مال که یوم الدین ایاکن نعبدو و ایاک نستعین بعضی تو قرائت نماز این رو تاکید دارن میگن مثلا شما نماز که می‌خونی، حالا مثلا فرادا داری نماز بخون در جماعت امام هم دوست رو داره بقولی زحمتش رو بعد ما میکشد و واسطه ای ماستر پیشکاه خدا اما فرادا میخونی میگن مثلا ایا کنعبد نگو کنعبد نه ایا کنعبدو این کاف را به نون نکستان عوض بشه ایا کنعبد ایا کنستین کنستین نیست ایا کنعبدو و ایا کنستعین چرا اینجا زمایر جمع آمده نعبدو ما داریم عبادتت میکنیم نست این ما است استعانت از تو استانت بجویم یا از صراط المستقیم ما رو به صراط مستقیم هدایت کن این زمان جمعه شما نماز رو خب میایی فرادا میخونی یه وقتی دید. مثلا ممکن مقتد ندی اما چرا میگی یادکن نه ابوت و یاکن است این جمع میاری اینجا چند تا نظر رو مطرح کردن میگن یکی این که نمازگزار کنه عمل خودش رو ناچیز میدونه عملش رو میخواد در جمع عمل صالحان خدا بپذیره دیگه تو که میخواه عمل سالحان را بپذیری لا این قاطی این عمل منم بپذیر نکته دوم بعضی مطرح میکنن که این جمع آمدن وقتی میگیم نعبد و نستعینو یعنی اخوت دینیمون رو با همه مسلمانهای مسلمان های جهان اعلام میکنیم دیگه اسلام و کمک به مسلمان دیگه مرز جغرافیایی نمیشناسه که ما بگیم آقا فقط مثلا اگر کسی از من کمک خواست او که فقط تو همسایگی منه یا اون که فقط تو ای منه تو استان منه تو کشور منه در هر نقطه ای از عالم باشه یعنی ما یه اخووتی با هم دیگه داریم نقطه سوم را بعضی مطرح میکنن که اصلا اصل انگار تشریه نماز به جماعته ببینید اولین نمازی که خونده شده امیرالمومنین المومین است و حضرت خدیجه کبراست و حضرت امیر علی علی سلام یعنی انگار تشریح جماعت انگار اصلش انگار به جماعته مثل که شما اصرار داشته باشید که نه من بابا حکم فقهی نه یا من بابا حکم تقریبا شیبه اخلاقی یا که نبود و یا که بعدش هم یه بحث دیگری باز در باره و نسل اینو بعضی مطرح میکنن به فرمان ببینید انسان متشکل از یه قوای ظاهریه شما چش داری گوش داری دست داری پا داری قوای باطنی مثل قلب و دل داری میگه این مجموعه فعال که در وجود توست یعنی به خدا بگو خدا یا من و همه اعضا و جواره هم عبدتو تویم. با قلبت با دلت با همه اعضا و جواره بود در خانه خدا لذا میگه ایاک نعبد ما تو را عبادت میکنیم و ایاک نستعین از تو استعانت میجوییم در هر امری از خدا یاری بخواه در همین امر عبادت هم میگه از خدا استانت میجوییم و یاری میکنم همین امر عبادت هم توفیق میخواد دیگه اگر خدا توفیق نده ما نمیتونیم قرآن را بخونیم نمیتونیم بیان بکنیم نمیتونیم شنونده قرآن باشیم اینم لطف خداست که دعوت بکنه یه عدی را به محفل قرآن پس استانت خدا یاری خداست که شامل حال میشه مثلا یه وقت رو برید طرف در راه مثلا ساعاتی برایش میگزارید در معصیت خداست یهو بینید پای سفره قرآن نشسته این خدا یاریش کرده کمکش کرده اگر خدا به حال خودمون با بگذاره معلوم نیست این ده هزار ما کجا باید خرج بشه اهدنا صراط المستقیم ما را هدایت کن به چی صراط مستقیم صراط یه راه اصلی را میگن جاده اصلی را فرقش با سبیل چیه مثلا شما مثال بزنید شما از قزوین داریم میرید تهران این اتوبان سرات باشه جاده ای فرعی که به شهرهای مختلف مناطق اطراف میخوره اونم میشه سبیل باز تمام اون سبیل ها منتهی میشه به این سرات که جاده اصلیه یعنی اون طریق و جاده اصلی رو میگن معنای لغوی هم بعضی میگن به معنای بلعیدنه میگه یعنی این سرات کسی که میاد در این مسیر چنان تو کام خودش فرو میبره انگار امکان هر نوع انحرافی از گرفته میشه اگه شما در سرات قرار بگیری تو سبین ها ممکنه چپاراس انسان بشه اما در سرات اگر قرار گرفتی میگه این راه تو را بلعید دیگه دیگه مسیر انحراف برات بسته شد حالا چرا ما هر وعده تو نماز داریم تکرار میکنیم احبای از سرات المستقیم آقا شما داری نماز میکنیم اگر در اصل نماز نیستی بله ما در اصل نمازیم خودمون الان تو سرات مستقیمیم دو دوتا نکته یک سرات مستقیم مراتب عالیه داره. بسکین که شما تحصیل میخواید بکنی یه دوری ابتدایی داری یه دوری راهنمایی داری متوسطه داری دانشگاهی داری بعد لیسانس داری فوق و لیسانس داری دکترا داری همین جو بالاتر شما در یه مقطعی نباید توقف کنی وقتی میگه خدای منو به صراط مستقیم هدایت کن یعنی اگه من دوری ابتدایی ام خدای دست بده دور دور بعدی ببر یا دور دوره های بعدی ببر به تعبیر حضرت آیت الله جوادی آملی همه, همه همتتون نباشه که مثلا ما فقط جهنم نریم بی قرار باشه همه همت دیم باشه جهنم نری خب خدا دیوانه هم جهنم نمیبره یه ادعای هستن که اونا عقل درستا بیان اونا هم جهنم نمیرن میگه همه همت دیم نباشه بیا دو کلاس بالاتر یه حالا اینجا یه داستانی ای رو من نقل کنم از علامه ایت الله مصفوی یزدی ایشون در ایک جلسات درس اخلاقشون این رو مطلب رو نقل میکردن خوب قابل تحمل انسان بده اینا فکر بکنه که من در چه حدی در چه کلاسیا، هم نه فقط مثلا بشنبیم و تمام بره روش فکر بکنیم چون می که یه از علماء رو به نام آشق خلیل تهرانی را حالا چون شما نمیشنستید این شروع کیست که ما میشنستاویرن داریم که ایشان را خواب دیدن بعد فوتش گفتن آقا برزخ چه خبر؟ دقت کنید آقا یا دقت کنید. این فرصت که خدا بهتون داده این ساعت رو خوب دقت کن ایشان در اون عالم گفته بود اینجا ما گیریم و رنجی داریم گفته بود, رنج اینجا؟ گفته بود اون چیزی که من داده برزخم داره رنج میده در این عالمی که آمده اینست که هر صد هزار سال یک بار یه بار نوبت هم میشه امام حسین رو ببینم ملاقات با امام حسین جویست که برای بله همه هر روز باشه تو عالم دیگه. بعد ایشون در ادامه قرار به اندازه‌ای که افراد در این عالم توجه به اهل بیت دارند توجه به امام حسین داره چقدر از اهل بیت یاد می‌کنی چقدر عمرت رو خرج اهل بیت و قرآن میکنی به همون اندازه متصلی اونور مثلا با خودت می‌بری آقا من رنجم تو برزخ صد 100 هزار سال یک بار نوبتم میشه امام حسین رو ببینم بعد نمازا حداقلش را هر روز مقید باشید بعد هر نماز به 14 معصوم سلام بدید از راست مستقیم اگه افتادی در این صراط مستقیم دیگه راه انحراف ازت گرفته میشه کدام صراط مستقیم این صراتی است که ما وقتی میگیم نه یعنی این هدایت برای خودمون میخوایم برای مردم جامعهمون هم میخوایم چون اگر در یه جامعه دین حاکم شد اونجا میبینید حفظ دین برای شما ممکن است و برای خانواده شما ممکنه و ایمان و عمل صالح دسترسی بهش آسان و مطلوب میشه صراط الذين انعمت علیهم راه اونهایی که بهشون نعمت دادی خب را بهشون نعمت دادی در سوره مائده ببینید خدا فرمود و من یت الله و رسوله اونهایی که اطاعت کردن از خدا و رسول تو سوره نساس اولائک مع الذین انعم الله علیهم منش توا مل و صدیقین و من نبیین اینا کسانی که به اونایی که خدا بهشون نعمت داده هستن از شهدا و صالحین و انبیا و اینها یعنی این انعم علیهم اینا راه انبیاس من الذین انعم الله علیهم من نبیین و صدیقین و شهداء و سالین و حسنا اولائک رفیقا یعنی اگر به خدا میگیم خدای ما را به صراط مستقیم هدایت کن یعنی همون راه انبیا همون, همون راه صدیقین همون راه شهدا همون راه صالحین حالا شما ببینید انبیا در عالم مؤسسان دینن صدیقین حافظین و مربیین دینن شهدا شاهدان اعمالن در عالم مرزدار دینن دین به خطر بیفته اینا جان خودشون رو سپر میکنن میگن ما آماده‌ایم انکان دین محمدین صلی محمد. محمد. محمد. محمد. محمد. محمد. محمد. لم یستقم الا به قتلی ایا سیوف خوزینی. اگر دین جد استوار استوار نمیماند مگر به من شما شمشیر ها بیاد من رو دریابی این شهدان که مرزبان دینن و عامل حفظ دینن و صالحین هم محصول این دینن انسان های صالح این دینی که انبیا زحمتش کشیدند شهدا جانشون رو دادن صالحین میشون محصول این دین بَعْدَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ و الضَّالِّينَ غیر اونهایی که برایشون قذب کردی حالا کی‌ها رو برشون قذب کردی استعمال قرآن در مغضوب علیهم برای منافقینه برای مشرکینه برای یهوده مثلا شما ببینید تایید شده ی حزب المنافقین برای منافقین و مشکین و یهوده و الذالین اینا شو این گمراهان شامل ظالمان میشه کافران میشه و اهل معصیت میشه و نصارایی که به نجاتت دیر پیغمبر را قبول نکردن بسالوات الله دومین سوره قرآن سوره البقره که 200 هشتاد و شش آیه داره و طولانی ترین سوره قرآن و پیامبر اکرم از سوره بقره بقره و آل امران به عنوان زهراوان یکی جود شکوفه درخشنده یاد کردند و پیغمبرگایی در بعضی از برنامه ها اونایی که عالم به سوره بقره بودن رو بر دیگران مقدم میکردن چون احکام بسیاری در این سوره قرار داره و اولین سوره ای هم هست که بعد از هجرت پیامبر به مدینه بعد پیامبر اکرام نازل شده یعنی وقتی پیامبر هجرت کردن به مدینه اولین سوره این نازل شده بسم الله الرحمن الرحیم الفلامیم الفلامیم که از حروف مقطعی قرآنه و 29 سوره قرآن با این آغاز میشه نظرات مختلفی است ما در اون دوره ای که تفسیر سوره بقره رو کلش رو هم به لطف خدا در حدود 60 جلسه گفتیم مفصل پیرامونش بحث کردیم و 20 تا نظر رو اونجا مطرح کردیم در اون سی ها موجوده ولی یکی از مهمترینهاش رو میان این نحو می‌کنن چون هاش رو از اون 20 تا قای انقلت پیرامونش و اون 20 20 نظر رو حضرت آیت الله جوادی در تفسیر قیم تسلیمشون بیان میکنن و بعضیش هم رد میکنن ولی خب یکی از مهمترینش که دیگه هیچ کدوم از آیل مفسرین روش انقلت ندارن و همه میپذیرند میگن خدا میخواد بگید که این قرآن از همین حروف ساده تشکیل شده که شما با همین حروف سخن میگید اما از آوردن مثل این قرآن عاجز شده الف لام میم کتاب زال که در ادبیات عرب برای اسم اشاره دور به کار میره یه چیزی نزدیک من باشه میگم هازا اما اگه دور به با من باشه میگم ذالک حالا میگه اینکه داره ابتداعا نسبت به این قرآن اشاره به دور میکنه اون میخواد افق رفی قرآن رو اشاره کنه یعنی مقام بسیار بالایی داره و در لوح محفوظه این توجیه خوبه اما در یه جاهایی در قرآن هم شما ببینید کلمه هازا به کار میره مثلا ببینید یعنی میخواد بگید که درسته این قرآن اینجور نیست که حالا چون مقامش خیلی بالاست ما بخوایم از استفاده خودمون را محروم بکنیم پس قرآن به ما نزدیکه اون مرتبه بلندش مانع از بهرمندی ما از قرآن نیست مثل بعضی که مثلا رفتار اهل بیت را سیره اهل بیت را میشنبر مثلا میگن ما کجا امام معصوم کجا شما حرکت کن در این مسیر درسته ما دستمون به اون مقام رفی نمیرسد اما به همین مقدار که ما بفهمیم آیات را و تحمل درش بکنیم میتونیم از قرآن بهره برداری کنیم یعنی این قرآن غیر قابل فهم نیست که ما بخوایم کنار بزنیم و بگیم ما دستمون به فهم قرآن نمیر شکه منطقه شک یه وقت انسان در یه چیزی شک داره اما نسبت به اون بدگمان نیست اما رعی شکی را میگن که طرف نسبت به اون بدگمان هم باشه لا رعی بفی یعنی میخواد بگه که اون که شما داری میخانی از کل این کتاب 6236 آیه درباره خدا، معاد، برزخ، فرشتگان، انس، جن، جزای اعمال، تاریخ گذشتهگان، تاریخ، پیامبران، تمام اینها یقینیست هیچ بقولیم مولا دردش میره. یه بخوا روایت مثلا میخونیم، طرف میگه آقا مال ribaه تبعرستی کنه، علم رجال ببینید سندش درسته، اشکالی نداشته باشه، مشکلش کجاست؟ میگه این دیگه هیچ جای چک و چوبه‌ای نداره، گرچه روایاتی هم ما داریم که اصلا مولا درشته میره به قول. تمام لا بفی. شکی درش نیست تردیدی درش نیست خودن للمتقین این ماهی هدایت برای متقینه خب اینجا ممکنی یه سالی مطرح شه خب شما اگر همین اول کار آمدی گفتی این ماهی هدایت برای متقینه خب تکلیف انسانهای غیر متقین چیشه حالا خب اگر کسی اهل نیست بیاد سراغ قرآن یعنی از قرآن استفادهی و بهرهی نصیبش نمیشه اینجا پاسخ میگن ببینید پیامبر در سه تا مقته کار خودش رو انجام میده در یه مقته میاد کار پیامبر این است که انذار کنه و دعوت کنه خب دعوت پیامبر هنوز افرادی هستن که اصلا وارد مرحله ایمان نشدن تا جبسه وارد تقوا بشن پس پیامبر در یه مرحله فعلا میاد انذار میکنه یعنی به اون عموم مردم اعلام میکنه وقتی اعلام کرد مردم میان دو دسته میشن یه عده دعوت پیغمبر را قبول میکنن اینا همه میشن متقی آقا قبول کرد راه رو باز کرد در باز کرد که از اون هدایت الهی منشه. اما یه عده نه در هدایت رو خود چون بستن و مخالفت میکنن و اناد میکنن و میخواد بگید که اینکه در رحمت هدایت خدا رو روی خودش بسته یه قرآنی نمیتونه هدایت کنه باید قرآن وارد فضای قلب و گوش تو بشه که دیگه هدن للمتقین پس ما یک نوع هدایت عمومی داریم قرآن فهمات هدن لناس برای عموم مردمه که یه هدایتی هم داریم که نسبت بهش موزه میگیره و مخاطب میشه بی سمر و بی تفاوت یه هدایت مفیدم داریم که همین هدن للمتقینه و میگه بدونید قرآن چه کتابیه میگه آقای کتاب فیزیک به دادن میخوان قوائن فیزیک یادت بدن میخوان شما یه فیزیک بشی اما اگر قرآن رو برات باز کردن قرآن کتاب انسانسازیه سازیه ما رو انسان بار بیاره خودم متقین. این متقین کیان این راه بر خودتون باز کردن حالا مراتبی از تقویه یواش واش ورود بهش پیدا میکنن بگه های اهل تقوا اینها الازینه کسانی که یؤمنون بالقعیب به قیب ایمان میارن آقا شما حقایقی در قرآن هست فعلا ندیدی که و گفتن جهان پس از مرگ است شما دیدی؟ ندید فرشتگانی هستن ندیدی نمیدونم چیزهایی که در عالم هست ولی ما ندیدیمش یا بعضی هم به وجود مبارک حضرت مهدی از جلا حالا شریف تفسیر میکنن اولدین یومنونه بالغیب اونایی که ایمان میارن باور دارن غیب را ندیده را وقتی پیغمبر رو قبول کردن میگه آقا حرفا شما دیگه قبول داریم دیگه هر چی بگه ولی اینکه ما ندینیم یومنون بلقن و یقیمون از و اقامه میکنن نماز را به یه وقت سخن از نماز نمازه صرف خاندنه و در قرآن هرچی مطرحه سخن از اقامه نمازه اقامه نماز غیر خواندن نمازه اقامه یعنی که بنده اگر قیام بکنم من رو شما کامل میبینیم اقامه نماز در جامعه یعنی اگر یک نمازگذار را به معنای واقعی در جامعه بخواد نمازگذار واقعی بگیم تمام اون ویژگی هایی که برای نمازگذار واقعی در سوره مبارکه معارج تو توفیق خدا طرف برسیم به اونجا اون در وجود اون انسان نمازگذار باید پیاده بشه و از زندگیش باید باشه الذين یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاه و مما از اون چیزی که ما روزیشون کردیم یون اینو بعد دو تا تعبیر دارن همون می رزق ناهم از اونچه ما روزیشون کردیم یعنی کسی یکی از حرام بره پولی در بیاره این می ما ناهم نیست از اون چیزی نیست که ما بهش دادیم چون ما حرام به کسی نمیدیم که اون انفاق رو خدا نمی‌پذیره پس می رزق ناهم باشه از اون چیزی که ما روزی دادیم نه از هر راهی ربا غیره پول در بیاره برایشان بگه من یه خش دادم نه از اون ما روزی دادیم بعد یه بحث دیگه ای دونم میگن مما رزقناهم خدا نا من من امواله میونفقون یه وقته میگه ام اموال امواله میگه نه میگه هستی رزق کردیم در راه خدا به وقتی علم و انفاق به از علم اینفاق کن یه وقت آبرو به تو جامعه یه قبولت دارن از آبرود مایه بذار یه وقتی موقعیت اجتماعی صندلی به از اون موقعیت اجتماعی مایه بذار برای حل مشکل مردم و انفاق به و ولذین و کسانی که یؤمنون ایمان میارن به چی؟ به ما اون زل الک اون چی که به تو نازل شده اون که به تو نازل شده چیه؟ همه قرآنه و ما اون زل من قبلک و اون که به تو نازل شده یعنی اون تورات و انجیل و اینها چون میگه همه اونها از نایه خداست دیگه به اونم ایمان دویاریم منطقه عمل کجاست؟ عمل به قرآنه اونا رو میگیم از نایه خدا بوده ولی خب سپری شده. و ما اون ظلم قبلک و بالآخرت هم یوقنون و و بالآخرت و نسبت به آخرت هم همینان که یو یقین دارن آقا میخای به یقین به آخرت برسی ببین چندتا مرحله میگه باید بگذرونی اون ایمان به غیب اقامه سلات انفاق اون بحث ایمان به کتاب های آسمانی میگه اینا رو اگر از پشت صد گذراندی اون میوه و ای که بهت میدن یقین به آخرته رضا گیر اصلی ما میگه اگر بند محصیت میکنم گناه میکنم گیر اصلی اینست که یقینه به آخرت ندارم یقین به حساب کتاب ندارم اگه یقین به حساب کتاب ندارم یه گیرش اونجاییست که تو بحث انفاقه نمیتونم مالو از خودم زدا کنم یه بحثش که تو بحث اقامه نماز مشکل دارم نمازم هم حسابی نیست اولائکه اینا کسانی که الا خودن من ربهم بهم بر هدایتی از پروردگارشون هستن و اولائکه و اینا هم همینان اولائکه این خم بعدش من باب تحکیده یعنی اولائکه همینان که مفلهونن رستگارن رستگار مفله یکی در سوره ابتدای سوره مارک ممنون هم آمده که اینشاالله اون خوددا به اونجا برسیم میفرماد که بسم الله رحمان ر قد افل حل مومنون ممنون هم که دستگارن الان مومنون گفته که یومونه یومنون به ما اونزل همین مومنون مومنون بود و اون اولار ها هو تو سووری ما که مومنون هن فرماد قد فل حل ممنون هم که به این فلاح میرسن فلاح یعنی چی میگه فلا در زبان عربی کشاور دیگه فللا کشاورز چی کار میکنه؟ بزر را تو تل زمین میکاره چند وقت که میشه چی؟ برداشت محصول یعنی عمل مؤمنی است که محصول میده بذر عملشون پوچ نیست پوچ نیست امروز در مزرعی دنیا بذر را میکاره فردا میبینید در برزخ و در قیامتش برداشت میکنه ما یه هدایت اولیه داریم یعنی اونایی که اومدن دعوت پیغمبر رو قبول کردن دعوت امام محسوم رو دعوت علمای ربانی رو قبول کردن حالا وقتی دعوت رو قبول کردن برنامه ها رو انجام دادن خدا میگه یه هدایت دومی بهت میدم میشه هدایت سانوی ببینید نسبت به اول آیه دو فهموت هدن للمستقیم این یه مرتبه از هدایت اومد جلوتر که علی هدن من ربهم یعنی مراتب دیگری از هدایت خدا بهت داد یعنی وقتی اومدی وارد مسیر شدی انجام دادی برنامه ها رو خدا به صفای قلب میده توفیق بهت میده رغبت به تاعت میده حتی گاهی رویاهای های صادقه میده تو عالم خوابی چیزی گیرت میاد اون میشه مربوط به هدایت سانوی صفیه 3 نقط مقابل اینا کیان اینالذین کفرو اونایی که کافر شدن سواء علیهم سوا, اون سوا اون یعنی مساوی. مساویس بر اینها اعنذرت هم آیا اینها را انذارشون بکنی ام یا لم تنظر هم یا انذارشون نکنی لا یومنون اینا ایمان نمیارن خب آقا چه فرق میکنه الان مثلا یه کافری اینجاست مثلا فرض ما اگر قرار بدیم خوابی کافره دیگه بگه آقا اگر قرارش را انذار بکنی نکنی خب بگم خب پیامبر اومده اصلا این آدت را برای یه سری کفار بخونه. به انظار بکنه نکنه مساوی باشه چه فایده ای دارد که به خلاصن بر اینها بخونه مگه روز اول همه اینا مسلمون بودن یه کافر بودن اینجا بعضی از آیان در تفسیر فرمان اینجا ناظر به اون مرتبه نهایی کفره یعنی دیگه به اون نقطه بالای کفر و یه مراتب پایینی سال فعلا براش اثبات نشده استدلال میاری دلیل میاری قبول بکنه اما میگه این وقته به یه از کفر میرسد که دیگه اصلا هر نو دلیلی بیاری از شما قبول نمیکنه مساویس بیگی نگی مساویسی که فرق کنه اینا هن یعنی که چون اناد دارن با پیغمبر نجاجت دارن ای وقتی این طرف اناد نداره میگه آقا دلیل بیار قبول می‌کنه اما وقتی ای طرف اناد داشت مثل آدمی که خودش زاده بخواب لگد به بزنی نمی‌خواد بیدار شه. اما داد خوابه یه تکون میدی آقا بیدار شد اینا کسانین یعنی که اناد و خودشونو زدم بخواب در آیه 7 میفرماد ختم الله و قلوبهم ختم یعنی مهر زده خدا علا قلوبهم و علا هم. هم به قلبهاشون هم به سمشون یعنی شنوایی سامعه حالا چرا اینجا را ختم میگه میگن آقا برای اینکه قلب و گوش جهت معینی درکات نداره یه وقت ممکنه از پشت سر صدا به گوشت برسه یه وقت از چپ راست جلو از هر طرف ممکنه صدا به گوش برسه خدا مهر میزنه دیگه از هیچ جهت شما نمیشنabi. و علاوه ابزاره هم، اما نسبت به چیش، جهت مقابل و تقریبا میبینه. دیگه پوستش هر شانه بیببینی که برادر و داره مگر که گریه را جدی حالا تا آریش فقط جلو را میبینی. نسبت به چیش میفهمد که شاه و. یعنی یک پردهای آبی زدم میکنیم. پردهایی میزنیم که نتونه دیگه ببینه. این نتیجه عمل خودشه، نتیجه اون لجادات خودشه. ولی هم اذابون، از این تو دنیا دیگه راه پیدا نمیکنه. تو آخرت هم نتیجهش میشه که ا از این در انتظار این هاست خب این یه،, یه گروه شدن گروه کفار حالا گروه دوم کسانی که حالا حرف و عمل را ببین ظاهر را نگاه میکنی آیه هشت را این کلمه به کلمه با ما جلو بیای خیلی در اینشالله فهم قرآن تاثیرش بیشتره آیه هشت میفهمون و من ناس من ناس اینجا من بعضیت هست. یعنی همه مردم اینجور نیستن بعضی از مردم هستن و من الناس من یقول کسیست که یقول میگوید چی میگه؟ آمنا بالله و بل یوم الاخر من ایمان به خدا و روز آخرت آوردم اما وما هم به مومنه اینا مؤمن نیستن یعنی فقط ادعاست لفظی صدهیه منافق همینه دیگه ظاهر میگه پشت سر قلب رو میشرافی میگه هیچ خبری از ایمان نیست یخادعون الله اینا میخوان با این زائر سازی خودا کنن خدا رو فریب بدن مردم رو فریب بدن یخادعون الله ولذین آمنو هم میخوان خدا رو فریب بدن هم میخوان مردم را فریب بدن اما وما یخطعون الا انفسهم فریب نمیدن خودانا میکنه بده با خودت خودت را داری فریب میدی و گول میزنی و ما یشعرون اما شعور نداره درک نمی کنه شعر تو عربی یعنی مو مو وقتی میبینی شعور یعنی باریچ مو شکافی میگه فلا این شعور داره یعنی نکات دقیق و ضریف ها میدونه اهل شعور فهمه نکات رو قشن خوب راید میکنه ازا انسانی که به فهم اویوب نفسانیش رسیده به اون تشخیص حق از باطل رسیده اون جز کسانیش که یشعرون شعور داره اما کسی که نتونه بفهمه گاهی تشخیص حق از باطل به یه موبنده اینا کسانین که و مایشورن شور ندارن دک ندارن اون ظرافت اندیشی را ندارن فی قلوبه هم طوری که قلبشون به جای ایمان چیه؟ تو ظاهر زبانشون که امان الله بود اما تو دل چیه؟ فی قلوبه هم مرض تو قلبه هاشون مرزه کینه هست، بدخواهی بر ضد اسلام و بر ضد پیغمبر هست فزا ده لا مرضا خدا مرض اینها رو زیاد میکنه آقا خدا مرض اینها رو زیاد میکنه عیب تو اینها تو وجود اینهاست نه در قرآن و اینها خدا چوری مرض اینها رو زیاد میکنه هر آیهی که نازل میشه چون اینا بهش عمل نمیکنند و سخره میگیرن نقطه خب آیات متحدر هرچی آیه بیشتر شد سخره گیریشون بیشتر شد میبینید جپه اینها بیشتر میشه و قلبیشون بیشتر میشه مثلا یه سفره ای رو انداختن از اطعام 5 نفر سر این سفرهن یکیشون مریزه اصلا براش ضرر داره این غذا مثلا فرض میگیریم حالا ضرر داره خب الان اون یکی میخورن استفادهش هم میبرن میگن خیلی هم خوشمزه بود لذت هم بردیم اما اون که مریزه هر چی بخواد بخوره بدتر میشه دردش بیشتر میشه تو قضاسی یا تو خود اون شخصه ای در اون شخصه در مرضیه که در وجود اوست این چون فی قلوبه هم مرز اناد داره یه وقت با یک آیه داره اناد میورزه یه وقت داره با صد تا آیه اناد میورزه پس هرچی آیه بیشتر نازل بشه اناد اینم بیشتر, این بیشتر میشه دیگه فی قلوبه هم مرز فضا دهم الله مرزا ولهم عذابون علیم برای اینها عذاب علیمه به خاطر چی بما کانو یک زبون پناه به خدا از این کذب از این دروگویی هم ویژگی‌های متعددی رو خدا میتخواست اینجا بیاره اما میگهد این عذابه علیم به خاطر دروگویشونه که میگن دروگو دشمن خداست و حتی داره در قرآن که شیاطین بر دروگوها نازل میشن تنظل و کل و افاکن بر هر دروغگو نازل میشوند شیاطین برشون نازل میشن این عذاب از این جزای دروگه جزای کذبه یعنی کسی که ظاهرش با باطنش یکی نباشه. دروغگو دیگه ولی اینکه حالا من به شما بگم پشت پرده چیز دیگه باشم نفاق یعنی خودش دروغگویی دروغ عملی آیه یازدهم و ویزا قیل لهم زمانی که به اینها گفته می شود لا تفسدو فلارض فساد در زمین نکنید اینا چی میگن اینا خب فساد میکردن اقداماتی برای کارشکنی و ایجاد مشکل برای مسلمان ها انجام میدادن حالا به اینا میگن لا تفسد و فله از دست از این کارشکنی ها بردارید بیاید در راه اسلام جامعه میگن که قالو انما نحنو مسلحون میگن نه ما اصلا کارمون اصلاحه ما اصلا آمدیم برای اصلاح طلبی این ها. اینها اما ببینید تمام دارن ریشه ریشه به ریشه اسلام و دین و دیانت اینها میذارن حساب دارن میکنن این نما نحنو مستور قران هم الا شما مؤمنو حواستون باشه فریب ظاهلکاری فریب ظاهر دینی ادعا فریب اینها نخورید الا تنبیه یعنی آگاه باش حواست جمع باشه فریب نخوری مؤمن تیسه مؤمن زیرکه مؤمن فریب به دغل بازی نمیخوره الا آگاه باش انهم هم, هم مفسدون. اینا مفسد هستن ولاکن لا یشعرون، ولاکن شعور ندارن، درک نمیکنند. حالا یه برنامه اینایی که خودشون فتنه‌گرن، این است که یه برنامهشون تحقیر مؤمنانه، آیه سیزدهم ام و اذا لحم زمانی که به اینها گفته میشود آمنون ایمان بیارید کما آمن الناس همچنان که مردم ایمان آوردن شما ایمان بیارید اینا چی میگن؟ قالو میگن انومن کما آمن از ما ایمان بیاریم همچنان که آدمای نادان ایمان آوردن اینجا با حرف خودش میبینی کنترل میکرد اما یه دفعه از زبانش میریزه بیرون امیر المومنی میفرماد انسان یه ویژگیش اینه بلاخره اون باطن و مافز یه یک بیرون میریزه ادعای ایمان میکرد اما یه دفعه داره به اهل ایمان توهین میکنه میگه اینا صفیهان اینا نادانن اینا نمیفهمن یه دفعه از زیر زبانش اون محافظ زمین میشه بیرون تمام آمن از ها همانطور که ها ایمان آوردن علاوه بر این هم هم صفیها اینا هن ولاتن لا یعلمون خودشون خبر ندارن علم ندارن به این حقیقت از نظر منافق صفیح کسی است که اسلام آورده در راه دین قدم می داره از نظر منافق اینه اما از نظر قرآن صفیح کیه از نظر قرآن صفیح کیه که به خدا و دین کافر شده این موزگیری ها رو مشخص میکنه ویژگی چهاردهم هم این ها. و ایزا لقو لذین آمنو اینا وقتی لقو ملاقات میکنن با اهل ایمان میگن قالو آمنو ما میمانو بردیم به دروق میکن اما و ایزا خلاو شیاطین هم وقتی خلوت میکنن با شیطانای خودشون یعنی با همردیف های خودشون با منافقانی مثل خودشون قالو میگن اننا معکم نما نحن مستهزئون ما با شما اینو مؤمنان مسخره کردیم به احساسا گرفتیم حالا اینجا چند تا نکته بعضی از آیان در تفسیر ازش استفاده میکنن و ما اینجا که داره ازا خلوه الی هم نشون میده منافقین در موضع ضعفن هنوز به موزه قدرت نرسیدن وقتی جلسات مخفیانه پنهانی خلوتی میگذارن قدرت نداره ای قدرت هاش الانی اعلام میکرد نمیتونه یک الاشایاتینه هم میخواد بگه افرادی هم مثل خودشون اینا در واقع شیطانن به ظاهر انسان و از ماده شطنم میگه شیطان از ماده شطنه یعنی شر بالا و خل و الاشایاتینه هم وقتی خلوت میکنن با شیاطین خودشون قالو میگن ان ماعکم حال چرا با تاکید میگن ان ماعکم تو خودشون هم دارن با تاکید میگن تو خودشون هم دارن میگن انامه ماعکم میگه برای خودشون هم از خودشون درستابی قبول ندارن تو خودشون هم باید با تاکید بگن که طرف مقابلش بپذیره یعنی تو خودشون هم اعتماد به هم دیگه ندارن ان ماعکم انما نحنو مستهزئون ما نحنو اونها رو به مسخره گرفتیم مورد استثنایی مان اونها الله یسحذ بهم خدا اینها را به مسخره میگیره یعنی به مسخره میگیره یعنی جزای مسخره اینها را میده و یموت یمدهم فی هم. یموت یمد مرد کشیدن مثلا میگه آقا ظالم را مرد بده الفشطا یه یعنی مد دادن یعنی خدا مد میده میکشه فی توقیانه اینا تو توقیان بمونن یه وقت از طرف میبینید یه گناهی مرتکب میشه یه اشتباهی میکنه خدا او رو مبتلا به یه چیزی میکنه خب این سری بر میگرده یه گوشمالی میشه اما نه تو همون ظلماتش رهاش میکنه یه امهون می کور و اما در همون توقیانش میمانه اولایکل الذین اشتر و خدا اینا کسانی هم که مشتری شدن چی یا زلالت بالهدا مشتری زلالت شدن هدایت دادن. آقا تو معامله شما یه چیزی میدی یه چیزی رو از دست دادی دیگه جابجا جا کردی دیگه مثلا در وقتی پول داد کالا رو گرفت دیگه پول مال او شد کالا مال خودش شد میگه اینا اومدن هدایت دادن دیگه هدایت مال نیست دیگه زلالت رو گرفتن اولای کل مشتری اینش شدند چی شدن؟ زلالت, زلالت را به جای هدایت به عوض هدایت و ما این معامله چه معاملهی شد؟ فما ربحت تجارت هم رب یعنی سود اینا در این تجارت هیچ میدیره کردن ورشکست شدن و ما کانو محتدین و هدایت پذیر هم نبودن آیه 17 صفحه 4 مسلهم مسل اینا میذ مثل چی میمونه کمسل لذی مثل اون کسی میماند که استا و قدنارن افروخت چه چیزی رو افروخت میگه مثل این آدم مثل اون کسی است که کسی زلالت را گرفت مثل این منافق مثل کسی که استا یه آتشی روشن کرده استا و قدنارن فلما عذاعت وقتی روشن شد ازاعت از زو روشنی وزو یعنی نورانی فلا ما ازاعت ماحوله اطرافش روشن شد توی بری قدمی برداره یه حرکتی بکنه یه کاری بکنه زهبل لا به نوره هم. خدا نورش دفعه میبره و ترک همون ما و این رهاش میکنه در ظلمات خودش لا یبسرون دیگه بینام نمیشه دیگه روشنی هم بهش نمیده یه فضایی را میدید که میخواست به هدف خودش برسه یعنی با اون تو ها به هدفش هم نمیرسه ترک هم فی ظلمات یعنی به هدف خودش هم نمیرسه سومان، بکمان اومیون فهم لایرجون ثم کره بکمه گنگه اومیون کوره فهم یرجون اینه که هرگز رجوع به حقم نداره مثل کسی که آقا تو ظلمات گیر کرده راه و گم کرده گم کرده راهه تو بیابان راه رو گم کرده حالا شما حساب این کر باشه کور باشه لالم باشه کر باشه نمیتونه بشنوه کی داره صداش میزنه آقا راه دل اشتباه میری خودش هم لال باشه نمیتونه بگه آقا من راه کدوم وره یعنی هیچ راه نجاتی براش نیست دیگه نمیتونه بشنوه دیگری چی میگه نمیتونه ببینه کی داره با اشاره حتا بهش ایشون میده هر نمیتونه فریاد میزنه گیر کرده دیگه سمون بکمون امیان فهم لایجون هیچ رای رجوعی دیگه نداره حالا مثال دیگری خدا می زنه که خب این آدمی که خواست به هدفش برسه خدا گیجش کرد اون نور رو، اون راه را براش گرفت سمون بکمون دیگه هیچ هدایتی براش باز نمونده او کسای منمن من, من سما یه وضع پیجیزهی داره یه وقت از عامل کنندش همون خاموش شدن آتشه بود گفتیم استا نارن دیگه یه وقت طرف یه آتیشی روشن کرده عامل کنندش هم آتیش است یه آتیش بود خاموش شد گیش شد من سرگردان شد اما یه وقت از اونجا حالا به تعبیر این مفسرین گفتم تشبیه مفرده یه بحث آتیشه فقط مثال به آتیش زده اما در آیه 19 فرمود او کسایی بن من از سما مثل یه رگباری از آسمان بیاد توی این رگبار چی باشه فیه ظلماتون و رعدون و برقون تاریک باشه، رعد باشه، برق باشه یعنی همش رحشتناک باشه از سرسداش، از رویتش از... این حالا میخواد نجات پیدا کنه این مجموعی آور برای پیش اومده تشبیه مرکب یه مجموعه سرسام آور از ظلمات و رد و, و برق پیش اومده میگه من میخوام از این نجات پیدا کنم از این فضا باید در بیاد بیرون دیگه اما قرآن میگه میخواد چیکار کنه یجعلون اعصابهم فیاذانه انگشاشم زره تو گوشش تتیرشه من از سوایق از این سائقه ها حذر الموت بگه مرگ به من نرسه آیا مثلا انگشت بذاره تو گوشش تو این اوضاع سردرگ این نجات از مرگ یا از این فضا باید شه حضر الموت اما بداند که و اللهو محیطون بلکافرین خدا احاطه به کافرین داره الان تعبیرش از منافق به کجا رسید به کافر یعنی منافق در حقیقت انگار خدا رو به حقایق و قبول نداره یکادون برقه نزدیک است که این برق آسمان یختف و هم نزدیک است که این یختفو به ابصارم چشم اینا رو بزنه خب اینا اومدن چیکار کردن از ترس رد دستشون رو زدن تو گوششون دیگه دست دیگه ای نداره جلویش رو بگیره که میگه از هر جا کرده دست کرده دستو گوشو تو دو گوشه دور شده دو میخوای چکار کنی؟ کنه یکادل بغ یختفو به کل نما ازا علیهم وقتی هر زمان را براش روشن میشد مشوفی درش را می علیه هم. راه میرفت اما ویزا از دم علیهم راهبروش تاریک میشه قامو میسته یعنی مقدمات کارش برای نفاق بازیش فراهم میشه مشو حرکت میکنه در جهت نفاقش اسباب از ازش گرفته میشه قامو میسته ولو شاء الله و اگر خدا بخواد لذه ها به اهم و ابصار هم هم گوششو خدا ازش میگره چیزی دیگه هیچ رای برای رسیدن به حقایق ندارد ان الله علا کل شایی قدیر خدا بر هر چیزی قادر و تواناست حالا وضعیت کافرین را شهر داد وضعیت منافقین را شهر داد افتداعن و میفرماد یا ای ناس ای مردم اعبدو رب بکمون خلق خلقکم عبادت کنید پروردگارتون را که خلقکم شما را خلق کرده و ولذین من قبلکم قبل شما این همه افرادی که آمدن در کره زمین رفتن حالا به تخمین امروز 108 میلیارد نفر آمدن رفتن همین ها رو خدا خلق کرده لعلکم تتقون آقا سخن از تقوا و مراتب تقوا بود دیگه حالا چی کنم به اون تقوا برس او ربکم لعلکم تتقون عبادت بکنید تا برسید به اون تقوا حالا باز در معرفی خدا میگه خدا شما رو خلق کرده حالا بیاد نشانه های خدا را نعمت های خدا رو در عالم ببینید الذی جعل لكم الارض فراشا این زمین رو برای شما مثل فرش مثل بستری پهن کرده قرار داده و سماع بنا بنائا و آسمان رو بنا و یه سرپناهی برای شما قرار داده و انزل من السماء ماءا و نازل کرده از آسمان یه آبی بارانی از آسمان از کجا داره میاد فاخرج بهی من از سمرات و به وسیله اون بارانی که میاد فاخرج خارج کرده بهی به وسیله اون من از سمرات از سمراتی که از رزق مسا... میواه که رزقن لکن برای شما رزقیست فلا تجعلو لله اندادن قرار ندید برای خدا اندادی همتایانی مثلی و انتوم تعلمون در حالی که شما میدانید یعنی آلمانه این کار را نکنید این طرف جاهله بعد دارش استدلال میارن یا این دلایل بر توحید اما شما در حالی که میدانید آلمانه برای خدا شریک قرار ندید و این کنتم اگه شما اینجور هستید که فی ریبین تو شکید من ما نزل عبدنا در اون که نازل کردیم ما بر بنده خودمون شک دارید تو این قرآن تو بیارید به صورت مثل یه صوره ای مثل این بیاری ودو شهده اکون من دون الله برید شاهداتون را گواهانتون را بیارید من دون الله باشن غیر از خدا باشن آه. چون شاهدانی که شما میخواید بیاید اظهار نظر کنند باید زینف یا سخورشون صاحب اثر نباشه شهود این کنتم صادقین اگه راست میگید فعین لم تفعلو حالا اگر نتونستید این کار را انجام بدی، و ولن تفعلو لن هم برای نفی عبده و هرگز هم نمیتوانید فتقو بپرهیزید نارلتی از اون آتشی که وقود و هن ناس و الهجاره هیزومش وقودش وقود یعنی هیزوم وقودش کیان ناس و هجاره خود مردم و خود هجاره و سنگ ها هستن و این آماده شده برای کافرین یعنی شما که اهل عناد و قرزورزی هستید نه منطق خالیتونه و با رسول خدا دشمنی می کنید، شما دیگه منتظر آتش جهنم باشید اللهم کل ولی که الهجت ابن الخسن سلواتو که علیه و علا آبائه فی هازه ساعه و فی کل ساعه ولیان و خافدن و قائدن و ناصره و دلیلن و غینا حتی تو اروکتو آبتومتتهو فی ها تویلا اللهم عجل ولی الفرج ول آفیت و نصر بز